اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة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 علم به وقوع قیامت تنها به سوی او بازگردانده می شود و هیچ میوی از غلافش بیرون نمی شود و هیچ ماده ای باردار نمی شود و نمی مگر به علم او و روزی که آنها را ندا میدهد و می فرماید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید گویند پروردگارا ما در درگاه تو عرضه داشتیم که هیچکس از ما بر شرک گواهی نمیدهد. دهد و ضل عنهم ما كانوا یدعون من قبل و ما لهم من محیص و آنچه را پیش از این می از نظرشان ناپدید و نابود شد و دریافتند که در آن روز هیچ راه گریزی ندارند لا يسأم الانسان من دعاء الخیر و امسه الشر و یعوس قنوط انسان هرگز از طلب خیر و نیکی خسته نمی شود و اگر شر و بدی به او برسد، مایوس و ناامید میشوید و لئن اذقناه رحمه مننا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ و اگر پس از رنجی که به او رسیده است رحمتی از سوی خود به او بچشانیم مسلما میگوید این حق من است و گمان نمی کنم قیامت شود و به فرض اگر به سوی پروردگارم باز گرداند شوم بیگمان برای من نزد او پاداش های نیکو و خوش است پس بیگمان کسانی که کافر شدند به آن چه کرده اند آگاه خواهیم کرد و از عذاب سخت به آنها می چشانیم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونابا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وهرگاه بر انسان خیر و نعمتی عطا نمایی روی میگرداند و متکبران از حق دور میشوند و هرگاه شر شرب بدی به او برسد، پس تو آب و تقاضایش برای دفع آن افزون می شود. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد سپس شما به آن کافر شوید چه کسی گمراه در خواهد بود از کسی که با آن در مخالفت شدید و دور است زنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولا نکف بربك انه على كل شهيد. به شهيد نشانهای خود را در آفاق و در نفس خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا برای آنها روشنگردد که او حق است آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است الا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محیط آگاه باش آنها از لقای پروردگارشان شکند و آگاه باش که او به همه چیز احاطه دارد بسم الله الرحمن الرحیم آمین ها میم عین سین قاف كذلك يحي الىك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم اين گون خداوند پیروزمند و حکیم به سوی تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند و میکند له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وهو العلي العظيم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است تکاد السماوات یتفطرن من فوقه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن في الأرض الا إن الله هو الغفور الرحیم نزدیك است كه آسمانها خاطر عظمت الهی بر فراز یک دیگر شکافته و متلاشی شوند و فرشتگان به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش می طلبند. آگاه باش همانا خداوند آمرزندی مهربان است والین اتخذوا من دونه الله وما و کسانی که جز او دوستان و سرپرستانی گرفته اند خداوند بر آنها نگهبان و مراقب است و تو ای پیامبر متعهد و مسئول بر آنها نیستی وَكَذَلِكَ أُوحِينَا إِلَيْكَ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحَوْلَهَا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَرِيبَفِي فریق فی الجنت و فریق فی السعیر و این چون این قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا املقرا و کسانی را که پیرامون آن هستند هشدار دهی و از روز جمع شدن که در آن شک و تردیدی نیست بترسانی که در آن روز گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزانند ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصيم و اگر خدا می‌خواست یقینا همه آنها را یک امت قرار می‌داد ولیکن هر کس را که بخواهد در رحمتش داخل می‌کند و برای ستمکاران هیچ یار و یاوری نیست امیتاخذو من دونه اولیا الله هو الولی و هو یحیی الموتا على كل علی آیا آنها جز او دوستانی برای خود برگزیده اند در حالی که الله فقط کار ساز و دوست حقیقی است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست و ما اختلاف تم فی شیء فحکم إلى الله ذالکم الله ربي عليه توكلت و إليه انیب. و در هر چیزی که در آن اختلاف کنید پس حکم و داوری آن با الله هست. این الله پروردگار من است. بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا یذراؤکم فيه لیس که مثله شیع و هو السمیع البصیر او آفریننده آسمانها و زمین است و از خودتان برای شما همسرانی قرار داد و نیز جفتهایی از چهار پایان آفرید شما را بدین وسیله ابزون می کند هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست لَهُ مقالید السماوات والأرض يَبْسُطُ الرزق لمن یشاء و إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ علیم کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست روزی هر که را بخواهد خواهد گسترش میدهد و برای هر کس که بخواهد تنگ میگیرد به درستی که او به همه چیز داناست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 كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب را برای شما تشریع کرد از همان گونی که به نوح توصیه کرده بود و از آن بر تو وحی کردی ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردی ایم که دین را بر پا دارید و در آن فرق فرقه نشوید بر مشکان گران است آنچه شما آنها را بدان دعوت می کنید. خداوند هر که را بخواهد برمیگزیند و هر که به سوی او باز گردد هدایت می کند.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 وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْرِثُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبِ آنها پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و دانش به سراغشان آمد و کاملا آگاهی یافتند آن هم از روی حسادت در میان خود بود و اگر فرمانی پیش از این از جانب پروردگارت صادر نشده بود که آنها را تا زمانی معین محلت داده است یقینا در میان آنها داوری میشد شد و بیگمان کسانی که بعد از آنها وارث کتاب شده اند در باری آن سخت در شک و تردیدند. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا و ربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجت بیننا و الله یجمع بیننا و المصیر پس به این دین دعوت کن و همانگونه که معمور شده ای پایداری به استقامت ورز و از هوا و حوصهای آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده است ایمان آورده و مأمورم در میان شما به عدالت رفتار کنم خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست نتیجه اعمال ما از آن ما و نتیجه اعمال شما از آن شماست بین ما و شما هیچ جدال و خصومتی نیست خداوند ما و شما را در یک جای گرد می آورد و بازگشت همه به سوی اوست عدم است له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم و عليهم ضب و لهم عذاب شديد و کسانی که دربار خداوند مهاجم میکنند پس از آنکه فرمان او پذیرفته شد دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است و خشم خداوند بر آنهاست و عذاب شدیدی برای آنهاست الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب خداوند کسی است که کتاب و میزان را به حق نازل کرد و تو چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون يعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد کسانی که به آن ایمان ندارند در رسیدن آن شتاب می‌کنند و کسانی که ایمان آوردهاند پیوسته از آن بیمناکند ناکند و میدانند که آن حق است. آگاه باشید. بیگمان کسانی که درباره قیامت جدال می‌کنند در گمراهی دور و دراز هستند. الله لطیف بعباده ی رزق من یشاء و هو القوی العزیز خداوند نسبت به بندگانش لطیف و مهربان است هر کس را بخواهد روزی میدهد و او توانای پیروزمند است من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصبكسیكه كشت آخرت را بخواهد در كشت او بركت میدهیم ومیأفزائیم و کسی که کشت دنیا را بخواهد از آن به او میدهیم و او در آخرت هیچ نصیب و بهرعی ندارد ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضی بینهم و الظالمین لهم عذاب علیم آیا مشرکان معبودانی دارند که بدون اجازه خداوند آینی برای آنها مقرر داشتهاند و اگر وعده فیصل بخش نبود یقینا در میان آنها داوری می شد و بیگمان برای ستمکاران عذابی درناک است ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير در روز قیامت ستم کاران را میبینی که از آنچه به دست آوردند بیمناکند و کیفر آن به آنها خواهد رسید و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده اند در باق های بهشتند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها محیاست این همان فضل و بخشش بزرگ است. ذلک الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا و الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى و م قف حسن نزد له فیها حسنا إ الله غاف این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام داده اند به آن مده میدهد بگو من بر رساندن آن هیچ پاداشی از شما درخواست نمی کنم جز محبت خیشاوندی که به جای آورید و هر کس که نیکی کند بر نیکیش می افزائیم. بی بیگمان خداوند آمرزندی قدر شناس است ام یقولون افترا علی الله کذبا فان این الله یختم علی قلبک ویمحو الله الباطل ویحق الحقق بكلماته انه علیم بذات الصدور آیا میگویند پیامبر بر خدا دروغ بسته است پس اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر میزند و خداوند باطل را محف میکند و حق را با سخنان خیش محقق و پا میسازد سازد. بیگمان او براز سینه ها آگاه است. و هوال ذیی قبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات ویعلم ما تفعلون. و او کسی است که از بندگانش توبه میپذیرد و از بدی ها درمی و آنچه را انجام می دهید می داند و یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات و الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایست انجام داده اند اجابت می کند و از فضل و کرم خیش آنان را افزون میدهد و برای کافران عذاب شدیدی است ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصیر و اگر خداوند روزی را برای بندگانش فراخ و گشاد می‌گرداند، یقیناً در زمین فساد می کردند به انداز ای که بخواهد نازل می کند بیگمان او به بندگانش دانای بیناست و هو ینزل يُنَزِّلُ الغیث من مِن بَعْدِمَا قَنَطُ وَيَنْشُرُ رحمته و هو الولی الحمید و او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه ناامید شدند نازل می کند و رحمت خود را می گستراند و او کار ساز ستوده است. و من آياتِه خلق السماوات وَمَا و ما بثَّ ما من دابهَ وهو على جمعهم إذا يشاءُ قديرِ و از نشانه های او آفرینش آسمانها و زمین است. و آنچه از جنبندگان که در آن دو پراکنده است و او هرگاه بخواهد برگرد آوری آنها تواناست و ما اصابکم من مصیبت فبما كسبت کسبت ایدیکم عن کثیر و هر مصیبتی که به شما رسد به خاطر کارهایی است که انجام داده اید و خداوند از بسیاری گناهان درمیگذرد وما انت بمعجزین فی الارض ومالکم من دون الله من ولی ولا لا و شما هرگز در زمین آجز کننده نیستید و نمی توانید از او بگریزید و شما را غیر از خدا هیچ یار و یاوری نیست و من و از نشانهای او کشتی هایی است که همچون کوه در دریا روانند این یا شئ يسكن الريح فيضلل النراكد على ظهره ان في ذلك لایات لكل صبار شكور اگر بخواهد باد را از حرکت باز میدارد پس کشتی ها بر پشت آن دریا بی حرکت بمانند بی گمان در این نشانه هایی برای هر صبر کننده شکر است. او یو بما بی ما و یعفو عن کثیر یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالشان نابود و غرق می سازد و از بسیاری گناهان در میگذرد. و الذين الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محيص. و کسانی که در آیات ما مجادل می بدانند که هیچ گریزگاهی ندارند فما أوتيتم من ف متاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقال الذين آمنوا ربهم يتوكلون پس آنچه به شما داده است متاع زود گذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل میکنند بهتر پای تر و پایدارتر است والذین كبائر الاسم والفواحش واذا ما و همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتیها ها اجتناب میکنند و هنگامی که خشمگین شوند گذشت میکنند وَالَّذِينَ استجابوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رزقناهم يُنفِقُونَ و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپامی دارند و کارهایشان بین آنان به صورت مشورت است و از آنچه به آنها روزی داده این در راه خدا انفاق می کنند و, اذا هم و کسانی که چون ستمی به آنها برسد انتقام می گیرند و جزاء سیئت مِثْلُهَا مثلها فمن عفا و اصلح فأجره الله، لَا لا يحب الظالمین و جزای بدی بدیست همانند آن پس هر کس که در و اصلاح و آشتی کند پاداشش بر خداوند است. بیگمان او ستمکاران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمی فاولئك ما عليهم من سبیل. و کسی که پس از ستمی که بر او رفته است انتقام بگیرد. پس اینانند که هیچ راه ملامتی بر آنان نیست این نمسبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الأرض بغیر الحق اولائک لهم عذاب أليم تنها راه ملامت بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق سرکشی و ستم می کنند اینانند که برایشان عذابی دردناک است وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَقَرَ ذلك ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ و کسی که شکی با ای کند و درگذرد بی بیگمان این از کارهای سترگه است وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَكَسِی را که خدا گمراه کند پس بعد از او برایش هیچ ولی و کار سازی نیست و ستم کاران را روز قیامت می بینی که چون عذاب الهی را مشاهده کنند می گویند آیا هیچ راهی به سوی بازگشت وجود دارد؟ وَتَرَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فی عذاب مقیم. و اینوالیین نفی عذبم مقیم آنها را میبینی که بر آن عرضه میشوند که از شدت خاری خااشاند از گوشه چشم نیم گوشود نگاه می کنند و کسانی که ایمان آوردهاند میگویند، بیگمان زیان کاران کسانی هستند که در روز قیامت خود و خانواده خیش را به زیان افکندند آگاه باشید که ستم کاران در عذابی دائم خواهند بود و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله و من و آنها جز خدا یاورانی ندارند که یاریشان کنند و کسی را که خدا گمراه سازد پس برایش هیچ راه نجاتی نیست استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير دعوت پروردگارتان را اجابت كنيد پیش از آنکه روزی فرار رسد که از جانب خدا راه باز گشتی در آن نیست در آن روز پناهی نخواهید داشت و هیچ مدافعی ندارید فَإِنْ اعرضوا فَمَا ارسلناك كَعَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ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 اگر مشرکان اعراض کنند نگران نباش ما تو را نگهبان برانها نفرستاده این بر عهده تو جز تبلیغ رسالت نیست و ما چون رحمتی از سوی خود به انسان به چشانیم به آن شاد می شود و اگر به خاطر کارهایی که انجام داده بلایی به آنها برسد پس به ناسپاسی میپردازند. بیگمان انسان بسیار ناسپاس است. لله ملک السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب למי يشاء إناث و يهب למי يشاء الذكور. فرمان روايي آسمان، زمین از آن خداست. هر را بخواهد می آفریند به هر کس بخواهد دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر می بخشد او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم حکیم یا پسر و دختر هر دو با هم میدهد و هر کس را که بخواهد اقیم میگرداند گرداند بیگمان اودانای قادر است و ما کان لبشر این یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا او يرسل رسولا باذنه ما يشا. انه و برای هیچ بشری ممکن نیست که خدا با او سخن بگوید مگر با وحی یا از پس پرده یا رسولی بفرستد که به فرمان او آنچه را بخواهد به او وحی کند بي او و بلند مرتبه حکیم است کذالک اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به‌هی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم و این گونه بر تو ای پیامبر روحی را به فرمان خود وحی کردیم تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست ولی ما آن را نوری قرار دادیم با آن هر کس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم و مسلما تو ای پیامبر به راه راست هدایت می کنیم صراط الله الذی له ما في السماوات وما ما في الارد الى الله تصیر الامور راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست آگاه باشید که همه یه کارها به سوی خدا باز می گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان حم م ح م المبين سوگند به کتاب روشنگر انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون بی گمان ما این کتاب را قرآنی عربی قرار دادیم شاید که شما آن را دریابید و فی ام الكتاب لدینا لعلی و به راستی که آن در ام کتاب نزد ما بلند مرتبه و حکمت آمیز است أف آیا بدان سبب که شما مشکان گروهی اصراف کارید اعراز کنان این پند را از شما بگیریم وكم أرسلنا من نبی في الاولین و چه بسیار پیامبرانی که برای هدایت به میان پیشینیان فرستادیم. و ما من نبی الا کانو بهی یستهزئون و هیچ پیامبری به سوی آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره و استهزامی کردند هلك نهشدم هم بنش او و مثل الأولن پس ما کافرانی رومنتر از اینها را هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِيمِ ای پیامبر اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است یقینا میگویند خداوند پیروزمند دانا آنها را آفریده است الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحتدون. همان کسی که زمین را برای شما بستر قرار داد و برای شما در آن راه راههایی قرار داد باشد که هدایت شوید وَالَّذِينَ الزَّلَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ با آن کسی که از آسمان آبی به اندازه معین فرو فرستاد پس با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم شما نیز این گونه پس از مرگ از گورها بیرون آورده میشوید. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون کسی که همه اسناف را جفت آفرید و برای شما از کشتی و چهار پایان مرکبهایی قرار داد که بر آنها سوار شوید لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تا بر پشتشان قرار گیرید آنگاه چون بر آنها قرار گرفتید و سوار شدید نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را برای برایمان مسخر گرداند وگر نما توانایی آن را نداشتیم و الی ربنا لمنقلبون و ما به سوی پروردگار باز می گردیم و جعلو له من عباده جزء إن الانسان لكفور مبین و آنها برای او از میان بندگانش جزئی قرار دادند بیگمان انسان ناسپاس آشکاریست است أم اتخذ مما یخلق بنات وأصفاكم بالبنین آیا از میان آنچه می دختران را برای خود انتخاب کرده است و پسران را برای شما برگزیده است. و اذا بشر بوش بما ضرب للرحمان مثلاً ظل وجهه مسودو و هو و چون یکی از آنها را به تولد همان چیزی که برای خدای رحمان نسبت داد مژده دهند از شدت ناراحتی چهره اش سیاه گردد و او خاشب گین شود او من فی فی آیا کسی را که در زیور و زینت پرورده می شود و او در هنگام جدال قادر به آشکار و تبین مقصودش نیست به خدا نسبت می دهید. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إِنَاثَ أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون و آنها فرشتگان را که بندگان خدای رحمان هستند مؤنس پنداشتند آیا به هنگام آفرینش آنها حاضر بودند؟ به زودی گواهی آنان نوشته خواهد شد و از آن بازخواست خواست می شوند و لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم الا و گفتند اگر خدای رحمان میخواست ما آنها را پرستش نمی کردیم آنان به این امر هیچ گونه علمی ندارند آنان جز دروغ چیزی نمیگویند. گویند ام اتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون آیا پیش از این قرآن کتابی به آنان داده ایم پس آنان به آن تمثب می جویند؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی بلکه میگویند بیگمان بی گمان ما نیاکان خود را بر آینی یافتیم و ما نیز از پی آنها می رویم و هدایت یافتیم و ما ارسلنا من قبل قرية من نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون و اینگونه در هیچ شهر و قریه ای پیش از و حشدار دهنده ای نفرستادیم، مگر اینکه متنعمانش گفتند، ما نیاکان خود را بر آینی یافتیم و بیگمان ما به اعمال و آثار آنها اقتدا میکنیم. قال اولو جئتكم باهدا من وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ارسلتم به كافرون آیا اگر برای شما چیزی هدایت کنند تر از آنچه که نیاکانتان را بر آن یافتید آورده باشم؟ گفتند آری ما به آنچه که شما به آن فرستاد شده اید کافریم. فانتقمنا منهم فانظر کیف كان عاقبت المکذبین بنابراین از آنها انتقام گرفتیم پس بنگر سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی برا مما تعبدون و به یاد آور هنگامی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت بیگمان گمان من از آن چه می پرستید بیزارم إلا الَّذی مگر آن کسی که مرا آفریده و او به زودی هدایتم خواهد کرد وجعلها جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون و ابراهیم این کلمه توحید را کلمه پاینده در های بعد از خود قرار داد باشد که به سوی خدا بازگردند بل متعت هؤلاء و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین بلکه آنان و پدرانشان را از زندگی بهره ساختیم تا حق و فرستادی آشکار برایشان آمد و لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر واننا به كافرون هنگامی که حق برایشان آمد گفتند این سحر است اما نسبت به آن کافرین وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من عظيم و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ از مردم این دو شهر نازل نشده است أهم یقسمون رحمت ربك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 آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما روزی و معیشت آنها را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از تمام آنچه گرد می آورند بهتر است؟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 اگر چنین نبود که همه مردم یک امت می شدند، یقینا ما برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافر می شدند، سقف های از نقره قرار می دادیم و نیز نردبان هایی که از آن بالا روند. و لی بیوتهم ابوابا و علیها و برای خانه درها و تختهایی های قرار میدادیم که بر آنتکی زنند و وَإِن و این کل ذالک لما متاع الدنیا و عند ربك و, تجمع و زینت های فراوان برایشان قرار میدادیم و تمام اینها بهره ناچیز زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض لهو شیطانا فهو لهو قرین و هرکز از یاد خدای رحمان قافل و روی گردان شود برای او شیطانی برمی گماریم. پس هموار آن شیطان قرین به هم نشین او باشد و اینهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون و آنها اینها را از راه خدا باز میدارند و گمان می کنند که آنان هدایت یافتهاند حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين تا زمانی که در روز قیامت نزد ما آید به هم نشین خود میگوید ای کاش میان من و تو مسافت شرق و غرب فاصله بود پس تو چه بد همنشینی بودی ولیّاً فعکم اليوم ظلمتم انكم في العذاب مشتركون خداوند می‌فرماید چون ستم کردید امروز این گفته‌ها هرگز سودتان ندهد چرا که همه شما در عذاب شریک هستید افا انت الصم ومن كان في ضلال مبين؟ ای پیامبر آیات میتوانی به کران سخنی بشنوانی یا کوران و آنهایی را که در گمراهی آشکار هستند هدایت کنی فَإِنَّمَا نَذْهَبُ بِكَ فَإِنَّا فا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ پس اگر تو را از این دنیا ببریم بی گمان ما از آنها انتقام خواهیم گرفت أو نرينك الذي وعدناهم مقتدرون یا آنچه که به آنها وعده دادیم به تو نشان میدهیم پس یقینا ما بر آنها توانا هستیم فاستمسک بالذی أوحی إلیك انك على صراط مُسْتَقِيم پس به چیزی که به تو وحی شده است تمثب بجوی که بیشک تو بر راه راست هستی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وسوف تسألون. و بیگمان این قرآن برای تو و پند و سربالندی است اب زودی باز خواست خواهید شد واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمان الهتين يعبدون واس پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس. آیا غیر از خدای رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم و لقد ارسلنا موسی بی آیاتنا الی فرعون و فقال انی رسول رب العالمین و به راستی ما موسا را با نشانه خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم پس گفت بیگمان من فرستادی پروردگار جهانیان هستم فلما جاءهم بآیاتنا آیاتنا اذا هم منها يضحکون. پس چون با نشانه های ما به سوی آنها آمد ناگاه همه از آن خندیدند و ما نریهم من آیة إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. و ما هیچ نشان و معجزی به آنها نشان نمیدادیم. مگر اینکه از دیگری بزرگتر و مهمتر بود. و آنها را به عذاب گرفتار کردیم باشد که توبه کنند و بازگردند و قالوا یا ایوها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون و به موسی گفتند ای جادوگر، پروردگارت را با عهدی که با تو کرده برای ما بخوان. بی گمان ما هدایت خواهیم یافت فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون پس چون عذاب را از آنها برطرف ساختیم آنگاه آنها عهد شکنی کردند و نادا فرعون في قومه قال یا قوم علی سلی ملك مصر و هذی الانهار تجری من تحتی افلات تبصرون و فرعون در میان قوم خود نداداد گفت ای قوم من آیا فرمان مصر و این نهرها که زیر کاخ من روان است از آن من نیست آیا نمیبینید ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بلکه من بهترم از این مردی که خوار است و نمیتواند درست سخن بگوید بل او لا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه پس چرا بر او دستبندهای طلا فرو فرستاده نشده یا چرا فرشتگان صفکشید همراه او نیامده اند تا او را یاری کنند فاستخف قومهو فاطاعوه اینهم کانو قوما فاسقین پس فرعون قوم خود را بیخرد و سبک شمرد پس آنها از او اطاعت کردند بی گمان آنها گروهی فاسق بودند فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَضْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همگیشان را در دریا غرق کردیم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين آنگاه آنها را در شمار گذشتگان و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم ولما رب ابن مریم مثلا اذا قوم منه یصدون و چون دربارهٔ آفرینش فرزند مریم مثلی زده شد ناگهان قوم تو از آن شادی کنان داد و فریاد زدند و قالوا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او آنها آن مثل را جز برای جدال و لجاجت با تو نزدند بلکه آنها گروهی ستیز جویند ان هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لی بنی اسرائیل او جز ای نبود که ما بر او نعمت بخشیدیم و او را مایه عبرت برای بنی اسرائیل گرداندیم ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون واگر میخواستیم جای شما فرشتگانی قرار میدادیم که در روی زمین جانشین شما باشند و اینه لعلم لساعت فلا تمرن بها و تبعون هاذا صراط مستقیم. و بیگمان آن نشانهای برای قیامت است. پس هرگز در آن شک نکنید و از من پیربی کنید که این راه راست است. ولا لا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. و شیطان شما را از راه حق باز ندارد. بیگمان او برای شما دشمنی آشکار است. و جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم لکم ولی ابین لکم تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون اطیعون و چون ایسا با دلائل روشن آمد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا چیزهایی را که در آن اختلاف دارید برایتان روشن کنم پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید این الله هو ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم بیگمان الله پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید که این راه راست است فاختلف الاحزاب من بينهم، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم انگاه گروه های مختلف بنی اسرائیل میان خود در باری ایسا اختلاف کردند پس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روز دردناک هل ینظرون إلا الساعت ان تأتيهم بغتت وهم لا يشعرون آیا چیزی جز قیامت را انتظار میکشند که ناگهان و در حالی که بی به سراغشان بیاید؟ الاخيلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوستان در آن روز قیامت دشمن یکدیگرند جز پرهیزگاران یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ای بندگان من امروز نترسی بر شماست و نه شما اندوهگین می‌شوید. الّذین آمَنُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمین همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ شما و همسرانتان با شادمانی و اکرام به بهشت وارد شوید یطاف عليهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون خالدون بر گرداگرد آنها سینیهایی زرین و نیز جام جامهایی میگردانند و در آن بهشت آنچه دلها تمنا می کند و چشمها از آن لذت میبرد وجود دارد و شما در آن همیشه خواهید بود وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. همان بهشتی است که به پاداش آنچه که انجام میدادید آن را به ارث برده اید. لكم فيها فاكهة كثيره منها تأكلون در آن بهشت برای شما میوه فراوانی است که از آن میخورید این فی عذاب جهنم خالدون. بیگمان مجرمان در عذاب جهنم جاودانند. لا يفتروا عنهم وهم فيه مبلسون عذاب از آنها کاهش نمی یابد و آنها در آن از همه چیز ناامید هستند و ما ظالمناهم و لیکن كانوا هم الظالمین و ما به آنها ستم نکردیم لیکن آنان خود ستم کار بودند و وَنَا یا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قال إِنَّكُم مَا كِثُونَ و آنها فریاد میزنند ای مالک بخواه که پروردگارد کار ما را یک کند و بمیراند او گوید بیگمان شما در اینجا ماندنی هستید لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ براستی ما حق را برای شما آوردیم ولیکن بیشترتان از حق کراحت داشتید ام ابرمو امرن فا انا مبرمون آیا آنها تصمیم قاطع برکاری گرفتند؟ پس نیز تصمیم و اراده قاطع درباری آنها داریم ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسلنا لدیهم آیا آنها میپندارند که ما رازگویی و سخنان درگوشی آنان را نمی شنویم؟ آری می شنویم و فرستادگان ما از فرشتگان نزد آنها هستند و می نویسند. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین ای پیامبر به مشرکان بگو اگر به فرض محال برای خدای رحمان فرزندی بود پس من نخستین پرستندگانش بودم سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون پاک و منزه است پروردگار آسمان ها و زمین پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می کنند فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون پس ای پیامبر آنها را به حال خود رها کن تا در باطل غوطه بخورند و به بازی سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده شده است ملاقات کنند و سزای اعمال خود را ببینند او هو الذی فی السما اله و في الارض اله و هو العلیم و او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین نیز معبود است و او حکیم داناست وتبارك تبارک الذی له ملك السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعة وإليه ترجعون و پر برکت و بزرگوار است کسی که فرمان آسمان آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است از آن اوست و علم برپا شدن قیامت نزد اوست و همه به سوی او باز بازگردانده میشوید ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون و کسانی را که بجای او میخوانند اختیار شفاعت ندارند مگر کسانی که به حق گواهی دادند و آنان به خوبی میدانند ولا سألتهم من خلقهم لاقول الله ف يوقفك و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنها را آفریده است قطعا میگویند خدا پس چگونه از حق منحرف میشوند و یا رب این ها قوم لا یؤمنون و شکایت و گفتار او این بود پروردگارا بیگمان اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون پس ای پیامبر از آنها درگذر و بگو سلام بر شما پس به زودی خواهند دانست بسم الله الرحمن الرحیم حاميم ها ميم والكتاب المبين صغان بكتاب روشنگر إنا أنزلناه في ليلة مباركة بیگمان ما آن را در شب مبارک و فرخنده قدر نازل کردیم بیشک ما همواره هشدار دهنده بودیم فيها كل امر حکیم. در آن شب هر امر با حکمت و اوستواری، فیصله و تدبیر می شود امرا من عندنا اننا كنا مرسلين فرمانی از جانب ما بود بیگمان ما فرستنده آن بوده این رحمته من ربک انه هو السميع العليم رحمتیست از سوی پروردگارت بیگمان اوست که شنوای داناست رب السماوات والارض وما بينهما بینهما این کنتم موقنین پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دوست اگر شما یقین دارید لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين هیچ معبودی به حق جز او نیست زنده میکند و میمیراند پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست بل هم فی شك یلعبون بلکه آنها در شکند و بازی میکنند کنند به یوم تأتی السماء بدخان دخان مبین پس ای پیامبر منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد یغشن هذا عذاب که تمام مردم را فرا میگیرد این عذابی دردناک است رب نکشف عن العذاب این مؤمنون آنگاه کافران میگویند پروردگارا این عذاب را از ما برطرف کن بیگمان ما ایمان می آوریم. آناله مذکر و قد رسول مُبین. چگونه و از کجا پند می پذیرند در حالی که پیام بر روشنگر برایشان آمد. ثم تولو عنه و قالو معلم مجنون سپس از او روی گرداندند و گفتند او آموزش یافت ای دیوانه است اینا كَاشِفُ العذاب قلیلا اینکم عائدون بیگمان ما اندکی عذاب را برطرف می کنیم ولی شما به کفر و اعمال زشت خود باز می گردید یوم نبطش البطشت انا منتقمون روزی که به گرفتن سخت آنها را فرو گیریم بیگمان ما انتقام گیرنده ایم ولقد فَتَنَّا قبلهم قوم فرعون وَجَاءَهُمْ رسول كَرِيمٌ و بهراستی ما پیش از آنها قوم فرعون را آزمودیم و یامبری بزرگوار به سویشان آمد أن ادوا ال عباد الله اینی لكم رسول امین و به آنها گفت که بندگان خدا را به من واگذارید بیگمان من برای شما فرستاده امینی هستم وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ بیسبانیم و نیز بر خدا برتری مجوید بیتردید من برای شما دلیل روشنی آورده ام و این ان ترجمون. و همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه مرا سنگسار کنید و, و اگر به من ایمان نمیآورید پس از من کناره بگیرید فدعا قوم مجرمون آنگاه به درگاه پروردگارش دعا کرد که اینها گروهی مجرمند فأسری لیلا پس به او حکم داده شد بندگان مرا شبانه ببر یقینا شما تعقیب می شوید. واترك البحر رهوا نهم جند مغرقون و دریا را آرام وا بیگمان آنها لشکری غرق شده خواهند بود کم ترکو من جنات عیون چه بسیار باغها و چشمه ها را بعد از غرق شدنشان رها کردند و, و, مقام و نیز زراعتها و قصرهای نیکو و زیبا و نعمت کانو فیها و نعمتی که در آن شادمان بودند كذلك وأورثناها قوما آخرین این چنین بود و ما همه آنها را به مردمی دیگر با گذاشتیم فما بکت عليهم السماء والارض وما كانوا کانو پس آسمان و زمین بر آنها نگریست و به آنها مهلت داده نشد و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین و مسلما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت بار نجات دادیم من فرعون انه كان عالیا من المصرفین از فرعون كه او سركشی از اصرافکاران بود ولقد اخترناهم على علم علی العالمین و بهراستی ما آنها را با علم و آگاهی بر جهانیان برگزیدیم و من منالآیات ما فیه بلاء مبین و از نشانه ها آنچه به آنها دادیم که آزمایش آشکاری آن بود این هؤلاء اولائی بیگمان اینها میگویند إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرین سرانجام جز همین مرگ نخستین ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد فأتوا بآبائنا ننتمصادقن پس اگر راست میگویید نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید اهم خیر ام قوم تبع و الذین من قبلهم اهلكناهم اینهم کانو مجرمین آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ ما آنها را حلاک نمودیم بیگمان آنها مجرم بودند و ما خلقن السماوات والارض و ما بینهما لاعبین و ما آسمانها و زمین و را که در میان آن دو است به بازی چه ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون و ما آن دو را جز به حق نیافریدیم ولیکان بیشتر آنها نمیدانند یوم الفصل میکاتهم اجمعین بیگمان روز جدائی بعدگاه همه آنهاست یوم لا یغنی مولن عن مولن شیئن ولا هم ینصرون روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند نباشد و آنها از سوی کسی یاری نمی شوند الا من رحم الله انه هو العزيز مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده یقینا او پیروزمند مهربان است این شجره الذقو بیگمان گمان درخت زقوم طعم الفیم قضای گناهکاران است کلمه غلی فی البطون همانند مسی گداخته در شکم ها می جوشد کغلی الحمیم جوششی همچون آب جوشان خذوه فعتلوه الى سوائی الجحیم آنگاه به فرشتگان می او را بگیرید پس به سختی او را میان دوزخ بکشید ثم صبوا فوق رأسهی من عذاب الحمیم سپس بر سرش از عذاب جوشان بریزید لوق اننک انت العزیز و به او میگوییم به بچش که تو به پندار خود پیروزمند بزرگواری این هذا ما کنت به تمترون بیگمان این همان چیزی است که در آن شک داشتید این مقام امین. یقیناً پرهیزگاران در جایگاه امنی هستند جنّات و در میان باغها و کنار چشمه یلبسون من سندس و استبرق متقابلین لباس هایی از دیبای نازک و دیبای زخیم می پوچند روبروی هم می نشینند کذالک وزوجناهم بحور عین بدین است و هوریان گشاد چشم بهشتی را به همسری آنها در می آوریم در آن بهشت با عمر و آرامش خاطر هر میوه ای را که بخواهند میطلبند. لا يذوقون فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ در آن بهشت مرگ را نمی‌چشند مگر همان مرغ نخستین که در دنیا چشیده اند و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ کناد فَضْلًا مِنْ ذلک هو الفوز العظیم این بخششی است اسوی پروردگارت این همان کامیابی بزرگ است فانما فا یسرناه بلسانک لعلهم يتذكرون. پس ای پیامبر ما آن را به زبان تو آسان کردیم تا که آنها پند گیرند فارتقب انهم مرتقبون پس ای پیامبر منتظر وعده های الهی باش بیگمان آنها نیز منتظرند بسم الله الرحمن الرحیم آمین ها میم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ یقیناً در آسمانها و زمین نشانهای برای مؤمنان است وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَبَّتٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ و نیز در آفرینش شما و در آنچه از جنبندگان پراکنده میسازد نشان هایی است برای گروهی که یقین دارند نزَّلَ <سؤال> اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فْأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفَ <الرياح> <تصريف الرياح> <تصريف الرياح> آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و نیز در آمد و شد شب و روز و رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده پس به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند و نیز در وزش بادها نشانههایی است برای گروهی که خرد میورزند تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبی ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون اینها آیات خداوند است که ما آنها را به حق بر تو می خانیم. پس به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیات او ایمان میآورند آورند ویل لكل افاک اثیم واي بر هر دروغ گوی گناهکار یسمع آيات الله تتلا عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كان لن يسمعها فبشره بعذاب الیم که آیات خدا را که بر او خنده می شود می شنود سپس متکبران اصرار بر کفر دارد گویی که آن را نشنیده است پس او را به عذابی دردناک بشارده و اذا علم من آیاتنا شیئن اتخذها هزوه اولئیک لهم عذاب مهین و هرگاه چیزی از آیات ما را فراگیرد آن را به مسخره می گیرد اینان برایشان عذاب خار کننده است. م... جهنم ولا يغني, عنهم ما كسبوا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله ولهم عذاب عظيم جهنم است و آنچه را به دست آورده به حالشان سودمند نخواهد بود و نه آنچه به جای خدا برای خود دوست و معبود برگزیدند آنها را نجات میدهد و برای آنها عذاب بزرگی است هده هدا والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز علیم این قرآن هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند برایشان عذابی از سخت ترین عذاب های دردآور است الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خداوند همان کسی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا کشتی ها به فرمان او در آن روان باشند و نیز تا شما با سفر و تجارت از فضل او روزی بجوید و باشد که شما سپاس گذارید وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است همگی از آن اوست که برای شما مسخر برام کرد بیگمان در این نشانه است برای گروهی که اندیشه می کنند قل للذین آمنوا یغفرو للذین لا یرجون الله لیجزی قوما بما كانوا يكسبون ای پیامبر به مؤمنان بگو از خطای کسانی که به ایام الله امید ندارند درگذرند تا خداوند هر گروهی را به سبب آنچه که انجام میدادند دهد من عمل صالحا فل لنفسه ومن ثم الى ربكم ترجعون هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و کسی که مرتکب به کار بدی شود پس به زیان خود اوست آنگاه همه به سوی پروردگارتان می میشوید ولقد آتين بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ويقينا ما بني إسرائيل را كتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم و آنها را بر جهانیان برتری دادیم وآتناهم آتینا هم بینات من الامر فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم این ربک یقضی بینهم یوم فی آنها را در امر دین نشانه های روشنی عطا کردیم پس آنها اختلاف نکردند مگر بعد از آن که برای آنان علم و دانش آمد آن هم از روی تجاوز و ستم به یکدیگر بود بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آن اختلاف می کردند در میان آنها داوری می کند <تصفيق> ثم جعلنا على شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون سپس تو را ای پیام بر, بر راه و شریعتی روشن از دین قرار دادیم پس از آن پیروی کن و از هوا و حوث های کسانی که نمی دانند نکن این لن یغنو عن که من الله شیئا و الظالمین بعضهم بیشک آنها هرگز نمیتوانند تو را از خدا بی نیاز کنند و عذاب او را از تو نمایند و مسلما ستم کاران برخیشان یاور برخی دیگرند و خداوند یاور پرهیزگاران است هذا بصائر و و این قرآن برای مردم مایه بصیرت است و برای گروهی که یقین دارند هدایت و رحمت است ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا اَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ سَوَاءً, سواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ آیا کسانی که مرتکب بدیها شدند؟ گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که زندگیشان و مرگشان یکسان باشد، چه بد داوری میکنند؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون و خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کس را در برابر آنچه که انجام داده است پاداش دهد و به آنها ستمی نخواهد شد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 افلا تذکرون آیا دیدی ای کسی را که معبود خود را هوای نفسانی خیش قرار داد و خداوند از روی علم او را گمراه کرد و بر گوشش و دلش مهر نهاد و بر دیدش پرده قرار داد پس اگر خدا هدایتش نکند چه کسی بعد از خدا او را هدایت خواهد کرد آیا پند نمیگیرید؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن إلا يظنون چیزی جز این زندگانی دنیای ما در کار نیست می میریم و زنده می شویم و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمیسازد و آنها به این امر هیچ علمی ندارند و آنها جز به و گمان نمی کنند و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ما كان حجتهم اِلّا أن قالوا آتوب آبائنا اِلّا أن قالوا إن كنتم صادقين و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود حجتشان جز این نیست که گویند اگر راست گویید نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید ما ثم يجمعكم, ثم يجمعكم الى يوم لا فيه ولكن الناس پیامبر بگو خداوند شما را زنده می کند سپس شما را می میراند باز شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمع می کند ولیکن بیشتر مردم نمی دانند ولله ملک السماوات والأرض و ويوم تقوم الساعة يوم يخسر المبطلون و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا شود اهل باطل زیان خواهند کرد و ترا کل امت جاثیه کل امت تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون و در آن روز هر امتی را می بینی که به زانو در هر امتی به سوی نام اعمالش خانده می شود و به آنها گفته می شود امروز در برابر آنچه می کردید پاداش می آبید هذا كتابنا ینطق عليكم بالحق اننا نستنسخ ما كنتم تعملون این کتاب ماست که به حق بر علیه شما سخن میگوید و گواهی میدهد البته ما آنچه را که میکردید می نوشتیم فان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربه في رحمته ذلك هو الفوز المبين پس اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پروردگارشان آنها را در رحمت خود داخل می کند این همان بزرگ است و اما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم و كنتم قوما مجرمين و اما کسانی که كافر شدند به آنها گفته می شود آیا آیات من بر شما خوانده نمیشد پس شما تکبر کردید و قومی مجرم بودید و اذا قیل وعد الله حق و لا ریب فيها قلتم ما ما الساعة ان ظن الا ظن قلنا ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن وما نحن بمستقیم. و چون گفته می شود بی خداوند حق است و در آمدن قیامت هیچ شکی نیست میگفتید ما نمیدانیم قیامت چیست ما فقط گمانی داریم و ما در باری آن یقین کننده نیستیم